در ایران پس از دوره دبستان و مدرسه راهنمایی آموزان چه مرحله ای را تعییم کنند؟ آنها پس از مدرسه راهنمایی به دبیرستان می رفند. دبیرستان چند سال طول می کشد؟ دوره دبیرستان سه سال طول می کشد. پس از سه سال دانش آموزان دیپلوم میگیرند آنها میتوانند پس از گرفتن دیپلم به دانشگاه بروند؟ نه اگر کسی میخواهد به دانشگاه برود باید پس از دیپلم یک سال دیگر درس بخواند. این دوره پیش دانشگاهی نام دارد همه دانش در دوره دبیرستان مطالب یکسان یاد می گیرند؟ نه، دانش آموزان می در رشته های مختلف درس بخوانند. مثلا چه رشتههایی؟ رشته, های؟ رشته های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی. گروهی از دانش هم به هنرستان می روند. در هنرستان هم رشته های مختلفی وجود دارد؟ بله، رشته مثل مکانیک، کامپیوتر، حسابداری، گرافیک و... خیلی خوب است که دانش آموزان میتوانند در رشته مورد علاقهشان درس بخوانند.